داستان روح پتک جادویی روزگاری در دهکدهای دو برادر زندگی می کردند. هر هرچقدر برادر کوچکتر مهربون و درستکار و به پدر و مادرش بسیار وفادار بود برادر بزرگتره نامهربون و حریس بود به حدی که پدر و مادر پیرش رو به خونه برادرش فرستاد و از کمک کردن به اونها راضی نبود روزی برادر کچیک به کو رفت تا هیزم جمع کنه. وقتی زیر درخت بزرگی استراحت می کرد، چیزی از بالای درخت روی سرش افتاد. وقتی اونا برداشت، متوجه شد که فندقه. برادر کچیک تر گفت، او فندق خیلی بزرگیه. بهتر اونو به پدرم بدم. اونا تو جیبش گذاشت. بعد فندق دیگه افتاد و اونو برداشت. با خودش گفت خب میخوام این یکی رو به مادرم بدم خوب شد برای هر دو فندق میبرم فکر کردن به این موضوع که پدر و مادرش چقدر با این هدیه کوچیک خوشحال میشن باعث خوشحالی شده بود بعد دو تا فندق با هم افتاد برادر کوچیک گفت خوب من این دو تا فندق رو به برادر بزرگم میدم پس بهتره یکی را به برادرم بدم و یکی را هم به همسرش چون این دوتا فندق با هم افتاد به هر دوشون میدم. این فکر هم خیلی اونو خوشحال کرد. بعد برای جمع هیزوم به دره عمیق‌تری رفت. وقتی به سختی سرگرم کار بود متوجه شد آفتاب داره غروب میکنه. با عجله از کوه پایین اومد. اما هوا خیلی تاریک شده بود. هنوز راه زیادی را تا خونه باقی مونده بود که بارون تندی شروع به باریدن کرد. برادر کوچیک برای فرار کردن از بارون به خونه ای که در کنار جاده بود پناه برد. خونه خالی بود و کسی تو اون زندگی نمی کرد. هیزم ها رو کنار طویله خونه گذاشت و منتظر قط شدن بارون موند. یهو صدای پای عجیبی شنید. وقتی با دقت نگاه کرد چند آدم بلندقدر با چهره های عجیب دید که به طرف خونه میان. اونها به یک دیگه می بریم تو اون خونه بازی کنیم. بعد گفتن فکر خوبیه. اون خونه اونقدر بزرگی که ما میتونیم تو اون بازی کنیم. برادر کچیکتر ابتدا فکر کرد که اونها دزدای کوهستان هستن. خیلی ترسید دنبال یه جایی گشت که خودشو پنهون کنه. چون چیزی پیدا نکرد که خودشو پشت اون پنهون کنه مجبور شد از تیر بزرگ اتاق بالا بره. افراد بلندقدر با عجله وارد خونه شدند. برادر کوچیک از بالای تیر نگاه کرد و متوجه شد اونها انسان نیستند بلکه ارواح شاخ دارن. او خدای من چه قیابه های وحشتناکی دارند. برادر کوچیک اون چنون ترسیده بود که چشماش رو بسته بود و به خودش می لرزید. در حقیقت نفس نمیکشید. خوشبختانه اروا متوجه نشدند که این پسر روی تیر نشسته اونها روی زمین نشستند بازیهاشونو کردند درباره موزحایی که آدما از اون سردر نمیارنم حرف میزدند اروا پتک جادوییشون رو که تو تاریکی شب میدرخشید به زمین میزدند هر وقت میگفتند طلا بیا نقره بیا تکه های طلا و نقره از جای نامعلوم بیرون میومد برادر کوچیک وقتی تماشای بازی عجیب اروا رو دید ترسش رو فراموش کرد و یاد گرسنگیش افتاد بی اختیار یکی از فندوق رو از بیرون آورد و اونو گاز زد فندوق با صدای بلندی شکست صدای ناگهانی اروا رو از جا پروند به هم گفتند چه صدایی بود صدای ترک خوردن نبود آیا خونه داره فرو می ریزه؟ درسته؟ باید صدای فرو ریختن خونه باشه. اروا از خونه بیرون دویدند، در حالی که فریاد میکشیدند خونه داره خراب میشه، دیوانه وار به این طرف و اون طرف دویدند. برادر کوچیک از همون بالای تیر بزرگ شاهد فرار اروا بود، اما جرأت پای اومدن نداشت. نمیتونید تصور کنید که خودش از صدای شکستن فندق چقدر ترسیده بود. بعد از طولوی آفتاب پرید پایی. با خودش گفت چه معجزه متوجه شد مقدار زیادی طلای درخشنده، چندین شمش نقره و پتک جادویی اربا کف جا مونده به نظر می رسید اربا چنان برای بیرون رفتن از خونه عجله داشتن که فراموش کردن اونها رو بردارن. برادر کوچیک با طلاها شمشای نقره و پتک طلای جادویی به خونه برگشت او با تلاها یه قطه زمین بزرگی خرید هر وقت به لباس غذا پول احتیاج داشت فقط پتک جادویی رو به زمین میزد و میگفت پول بیا لباسهای اطلس بیا نان بیا و هر چیز دیگه ای. وقتی دستور میداد هرچه میخواست و هر هرقطر که میخواست ظاهر میشد برادر بزرگ خیلی به ثروت برادرش حسادت میکرد. روزی به کوه رفت. زیر درخت فندق نشست و منتظر افتادن فندق شد. وقتی فندق افتاد اونو برداشت و گفت این رو میخورم. وقتی فندق دیگه ای افتاد گفت اینو هم خودم میخورم. وقتی فندق سبوب هم افتاد گفت این رو هم میخورم. بعد از اون که فندوق ها رو تو جیبش گذاشت بالای همون تیر بزرگ خونه خالیی که برادر در برش صحبت میکرد رفت و منتظر ظاهر شدن ارواه شد وقتی هوا کاملا تاریک شد ارواح به خونه اومدند اونها بازی خودشون رو شروع کردند. پت که تلای جادوی خودشون رو به زمین میزدند و میگفتند طلا بیا نقره بیا اون وقت کپه بزرگی از طلا و شمشای نقره درست کردند برادر بزرگ وقتی چنین گنج بزرگی را دید نتونست جلای تهمه خودشو بگیره با دندونهاش فندوق بزرگی را شکست و زیر لب گفت لعنت بر شما ارواح این صدا باید شما را بترسونه حالا از اینجا برید اما وقتی صدای ترک خوردن اومد اونها فرار نکردند در عوض به اطراف خودشون نگاه کردند و شروع کردند به گشتن خونه اونها فریاد می‌زدن این پسر کجاست او دوباره اومد بالاخره اروا برادر بزرگتر رو گرفتن برادر بزرگتر التماس میکرد که اونها ببخشد خواهش میکنم منو ببخشید من بی‌گناهم. امروز اولین باریه که من اینجا اومدم. نه، دروغ نگو. دفعه پیشم تقصیر تو بود که پتک جادویی گم کردین. اروا با پتک خودش اونو زدند. گردن و مچ پای او رو اونقدر کشیدن تا شبیه مار ماهی شد. بعد از اینکه که اونو تنبیه کردن، همشون فرار کردن. هیچ طلا و شمش و نقره هم جا نذاشتند خلاصه برادر بزرگه به جای اینکه با پتک جادویی به خونه برگرده با برامدگی بزرگ روی سرش که به اندازه پتک اروا بود در حالی که از درد گریه و زاری میکرد به خونه برگشت سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی